بسم الله الرحمن الرحیم از جمله پرسش هایی که درباره نماز مطرح شده این است که چرا قبل از نماز اذان و اقامه گفته می شود؟ البته لازم به ذکره که اذان و اقامه واجب نیست برای نماز اما استحباب فراوان داره جوری که حتی اگر کسی نماز رو شروع کرد و فراموش کرده که اقامه بگوید گفتن می نماز رو قطع بکنه اقامه بگوید و سپس شروع به نماز بکنه این مقدار اهمیت اقامه و قبل از آن از آن هست اما سوال اینه که فلسفه از آن چیست؟ برای چی از آن مقرر شده؟ پیش از اسلام، برای دعوت مردم به عبادت، مسیحی ها و یهودی ها اینها از ناقوس و زنگ استفاده می کردن. که الان هم متعارف هست در بین مسیحیان که با در آوردن صدای ناغوس مردم رو دعوت به عبادت و رفتن به کلیسا و اقامه در حقیقت مراسم عبادی میکردند. در صدر اسلام هم صحبت بود در بین مسلمان ها که برای دعوت مردم به نماز چه باید کرد و چگونه باید اونها رو متلع کرد که مثلا نماز اقامه شده و به مسجد بیان برای عبادت خب پیشنهاداتی شد اما پیانبر اکرم از جانب خداوند اعلام فرمودند که ازان باید گفته شود که بر خلاف ناورس کلیسا و وسایل دیگری که اینها باهاش مطلع کردند مردم رو مفاهیمی است و کلماتی است که این کلمات از حلقوم انسانی بیرون میاد و مردم رو با این شکل خاص دعوت به نماز میکنه، دعوت به حضور در مسجد میکنه و خود ازان و اقامه مشتمل بر پیام پیامها از نظر اعتقادی و از نظر عملی است از نظر اعتقادی یاد کردن خداوند به بزرگی که حکایت از اون داره که اگر شما هر چیزی را مد نظر دارید هر چیزی را براش اهمیت قائلید به هر چی کاری که مشغولید اما الله اکبر خداوند از هر چیزی که وصف شود و به ذهن بیاد و به خیال بیاد بزرگتره پس باید جانب او را بیش از همه رعایت کرد و سپس شهادت به وحدانیت خداوند که مهمترین رکن عقیدتی اسلام هست که اشهد الله اله الا الله و سپس شهادت به رسالت پیانبر و در پیروه آن شهادت به ولایت که البته جز به ازان نیست اما پس از شهادت به رسالت خوب است که انسان شهادت به ولایت هم بدهد پس از این مسائل عقیدتی نوبت به ذکر مهمترین رکن عبادی اسلام و اون نمازی که فرامی رسد که هی علی السلام و بعد هم فلسفه نماز که هی علی الفلاح در نماز رستگاری است و در نماز است که بهترین عمل شکل میگیرد هیه خیر العمل و سپس باز هم یاد خدا و یاد بزرگی او و اینکه هیچ معبودی جزون نیست پس باید به عبادت او شتاف که لا الا الله خب اقامه هم علاوه بر این اعلام شدن نماز رو در خود دارد که قدقامت الصلاه. خب این یک شعاری است برای اینکه مردم متوجه وقت عبادت و حضور در نماز و مسجد بشن. البته از آن خواص فراوانی داره و در حقیقت آثار متفاوتی اولین اونها آمادگی نمازگزار، اعلام آمادگی برای اینکه نمازگزار در نماز حاضر بشه یا در مسجد حاضر بشه و در حقیقت با ذکر این کلمات یک آمادگی روحی و معنوی هم پدیدار میشه به خصوص اگر به معنای این کلمات توجه بشه و صرفا به یک صدایی که برمیخیزد برای اعلان اکتفا نشود و انسان به معانی اون توجه کنه طبیعتا با ادب و خضوع و خشوع در پیشگاه خداوند حاضر میشه برای عبادت که گل نغمه زیبای خداییست از آن پروانه باقی دلگوشاییست از آن محبوب تمام حق پرستان زمین پیغام رسان روشنائیست از آن علاوه بر این از آن موجب صفای باتن و نشاط روح میشه پیامبر اکرم وقتی که در حقیقت در شدت فشار کارها و برنامه های روزانه و مراجعات و بالاخره مشکلاتی که برای بخصوص خصوص جامعه شک گرفته صدر اسلام بود میفرمودن ارهنا یا بلال بلال ما را با ازان روح ببخش ما را با ازان زنده کن ما را, را راحت کن که با صدای ازان و با نوای خوش معزن ما آسودگی پیدا بکنیم و با ذکر خدا اون آرامش و اون در حقیقت صفایی که باید ایجاد بشه ایجاد بشه پس هم صفای باطنه و هم اعلام آمادگی به نمازگذار و اینکه وقت نماز و وقت ذکر خدا و یاد خدا فرا رسیده و علاوه بر این که خود یاد خداست یعنی علاوه بر اعلام آمادگی خود یاد خدا و یاد اولیاء خداست که بایستی به آن توجه کرد و با احتمام به ازان و به خصوص اذان هلغومی یعنی اذان زنده ازانی که از هلغوم انسان هی و زنده بیرون بیاد با اون اذان مردم دعوت به نماز بشن نه اینکه اذانی که از رادیو یا از نمیدونم نوار ضبت صوت پخش بشه که طبیعی اون اثر و اون خاصیت رو نخواهد داشت حالا فضائل از آن البته بیشماره به ویژه در قیامت از اون از همه یک سر و گردن بلندترن چون اینها دعوت کنندگان به نماز بودند و در حدیثی هم آمده است که در آخر الزمان برخی برای خودشون عیب و ننگ میدونن که ازان بگن و ازان رو مخصوص افراد مثلا افرادی که حالا چندان شعن اجتماعی ندارن اینها رو در حقیقت برای اذان انتخاب میکنن و حال که ما میبینیم خود امیر علی علیه السلام بالای معزنه میرن و ازان میگن و این نشان از و، از آن داره که امیدواریم خداوند به همه ما توفیق معزن بودن و به خصوص در خانه ها ازان گفتن که موجب خیر و برکت اون خانه میشه انایت بفرماید و سلام علیکم و رحمت الله و